من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمين الله صلی اللہ علی سید و در باب بیان در مساولی حسولی احضرتان آمده که در کتور ما بعضیش رو صابقا متحرس شدن لاحقا تقریبا اینها رو حذف کردن و عرض شده اجمالا این مسائلی که در اینجا مطرح شده انصافا ادهی شیدی کیفیت طرف شوشن نیست و روش بحث هم انصافا خیلی واضح به نظر نمی رسیم در این بخش بیان, بیان هست که سریعا این کتاب آمدی می کنیم برای آشنایی و طرح مسائل در دنیای اسلام مثلا مسئله پنجم رو در بیان اختلف و فیجوی جواز تأخیر ماهوی بهی بلند نبی بحث اینجوریست که اون که وحش شده به پیغمبر آیا پیغمبر میتونستن تخییر بکنن؟ این وقت پیشون محره مسئله رو و مثلا می که تمثل کردن یا یا رسول بلد ما اون زره گفتن این ظاهره در وجوب فوریت و اونها مزبطه که آن زاهره در وجود فوریت نیست دیگه این ترک را این مسئله را بدون یک خطیه از این چاپ جریب در این کتاب مطرح کرده اما ترکه از کلم برزید این مسائلشون اصلا واضح نیست که چون این مسئله که های آقه همبر اکرم سآخلا سآمون علیه با اون خطایثی که داشتن وحی الهی و حب داشتن تخصیر بکنید این ظاهره نه وزیفه ما و فقه و اصول و ارفان و فلسطه و ایچی خدا نه اصول میسونه این مسئله رو بده نه فرم میسونه بده نه ارفان نه فلسطه ایچی نه علوم قرآن و اصطلاع خودشونی اصلا این مسئله این مسئله غیر صحیح و یک مسئله عقیمی سیداتا اون وزیفه که پیغمبر در مقابل حضرت هفت یلا اس او اصلا در موضوع ماموتون وظیفه خداوند برای تخم پایک خداوند فرمان قبل از این اونجا در قضا که وقتی اون چیزی خود ریحان بر اون یقول وحی که وقتی به این قضا را چیه ما نمیفهمم نه حقیقت ظهریش میخوان نه حقیقت رابطش میخوان رسول <تص> الله <تصفيق> بله یعنی بل ما اون خب این احتمال داره که واقعی باشه چون به خاطر خود کی ولایتی اصلا نمی‌ناسه یعنی رد به مسئله اصولی نداره مسئله کلامی هم نداره بنا... من ده ده ده ده ده ده ده ده. از خود آیات چیزی که خود با خدا یعنی این بحثی نیست ما تو اصول مدرش بکنیم اصلا این بحث بحثی نیست این رابطه ای اون نفس مبارکه اون نفس خاص از رابطه خاص نیست نه ما می کنیم میکنه تحقیل میکنه نه یعنی اونیه ما به وقت دیگر ما در اصول بیشتر روی حقل عملی کار میکنیم ما برپرد در اونجا هم چیزی بگیم شبیه حقل نظریه حقل عملی نیست یعنی از البول شوره در یاد، درکین رابطه ای رو که خداوند در بین با خدا داشت، اون چیزی نیست که این کارو بکنه، این کار, کار نکنه. تو اصول نه، تو قاعده اصول، تو بعد از اثر علاقاتی حال که چه باشه، اصولا نمیاد. این رابطه که ای بین اون نفس اونوار که با اون ازاتهر هر, هر نیست که ما الان میشه موضوعش کنه، خداوند حق تغییر داشت، حق تغییر نداشت. که اگه مثلا یک جای تحقیقا دیگه میگه پیغمبری پیغمبر به هم خورد مثلا <تصفيق> چیزی نیست؟ چیزی <مثلا تصفيق> رابطه ما رو با پیغمبر بازه تر می رابطه خود معین نمونم رابطه بین خود و خدا رو خودش داره اصلا در اختیار ما نیست اختیار فقه و اصول و کلام و فلسفه و علومی هیچ رو نیست؟ ممکنه از ما بگیم از مجم و شواهد تاریخی و اونا مراجعه کرد این چیزی نیست در اصول بتونیم اصلا وظیفه ما نیست در حد کار فقیه نیست که بیاد چون اصول مقدمه فقیه بیاد مثلا بگین یجوز در رسول تأخیر لا یجوز در رسول این حدی نیست که لتونی که در رسول قرار کلام اصلا مگه عقل نظری مراد باشه که مثلا ما از مجموع آیادی میتنیم که فیغمبر تأخیر نمیکنم خب بسه بیاریم تکلیف بسه تکلیفی که ما بخورم در اینجا در بیاریم نیست مسئله شیش هم الگین تطفق و علم تناه که البیان کسایی که گفتن ممکنه یک بحث دیگری مطرح شده آیا میشه خدا من برای مکلف آم رو بیاره بدون اینکه که دلیل خاص رو به اصطلاح اسماء بکنه یعنی وقتی که امر رو اوض باشه این و هللت لكم بليمت الانعام الا ما يصل لا علیکم چطور اوهلت هللت لكم بليمت الانعام یک اشاره ای کرد که ممکن است بعضی ها تخصیص بکنه پس اصولا خداوند متعال نمیتونه عام می رو قرار بده بدونی که اسماء خاص مخصص بکنه وارد اسماء مختصن بشه اینجا اختلط و بعد نمیشت البته این بحث رو این اقوالی که اینجا اقوالی که ایشون نمر کن زهبا جبایی و عبالغوزیل علم تنا ازالک در زهیر مخصص سمعی اما در عقلی اجازه داده و زهبا و حاشم و نظام و عبالوسین بصری الان جواز اسماع الام تماما تمام این اسماعیی که برده شد متکلمه اینه به تو نرس اصولی سرسشون مید این حصم که اینجا برده از فرز اونها به حضر حسمایی. تمام اینا مسئله اصولی مسئله کلامی و مسئله را از زاویه کلامی بررسی کردن ما حالا این زاویه اصولی غیر از زاویه کلامی است اون یک زاویه اقلا میستی یک زاویه خاص ارفی است ارف خاص آنونی است اینا با هم دیگه فرده یه این مطلب به لحاظ حالا از ک به لحاظ قانونی مشکل نداره امر رو الان بگه مخصص رو اتماع نکنه این یکی مشکل شانا آم مادا مخصص رو این خود داره و یکی از ادله جوازش رو هم که ممکن است. رایشون گفتید در دوم انبوغو که از دوله جوازه چون این واقع شده که خداوند مطال آم رو برده خاص نه و دلیله اسما و فاطمه سلام الله علیه ها قوله او تعالی یوسی کم الله فی اولاده آیه ارس و عزرزه ها شینده بود اما اون حدیثی که عبور برگ نهنو ماهاش را انبیا نشیده بود اسما و فاطمه قول او تعالی یوسی کم الله فی اولاده کم من لم تسمع به قولی نهنو ماهاش را انبیا لا نوربست ما ترکناه و صدر از آن الا بعده این این, این هم دلیل برگوهشه هر مسئله بوده، یک مقدار بعد کلامی گرفته و یک مقدار هم مبالث اختلاف انگیزی که بین صحابه بوده یعنی خب این خیال کرده مثلا از زهران قبول کرده که بله این مطلب رو پدران گفتن اما من نشیده بودم حالا از اولیت مثلا شده شون جواب زیاده از احل سنت اینه که از زهران نشیده مخصص رو هم پیغم برخواه شدن بعد از اینکه مثلا اون شخص گفت اون پزا سرمان برده خب پسوانم شدید خب شما میدونید در عوائل ما اما اصلا اون رو باطل میدونید بحث اسماع ما من پس این مسئله از اصول خارج میشه باز میروه همون درواهای سنتی معروف بین طرفین در این که مراد عزیز زهرات شده علاوه که به ماکار این مطلقی رو که مثلا فخت سلو المشرکین بعد در دیگه و کذالک اسمه از صحابه قوله, قوله تعالی فخصو للمشرکین ولن یسمه اکترهم از المخصص المجوس مجوس رو نشینده و هو قوله صلی اللہ علیه و علیه وسلم سنو به هم سنت ادل کتاب الا الا بعده بعد بعدها مثلا شیندن صحابه در در نظر ما راجعه به این که با مجوس باید کار کرد و سنت احضر کتاب این زمان خود پیغمبر بوده حالا شاید یک جریانی بوده که این قصه گفته نشده به اله ترسط چون پیغمبرکت اولین بار که اهل بحرین اسلام آمدن علا ابن حضرانی رو فرست بعد هم خالد ابن ولید همراه این دوتا آقام اولیش دومی دومیس به هم سنت احضران زمان خود پیهنبر سال هشته ه از این جزه سرن رسول اللهی که همراه قرآن بوده نقصه شاید این بوده از کنم که دارم مؤمنین و مسلمان ها در مکه و مدینه ارتباطشون با این مجروس خیلی کم بود این توضیح خارج از کردم. نه در مکه مجروسی وجود داشت نه در مدینه نه در اشاری و قراری که از مدینه بودن اصلا در اون محدودها زردشی یا مجوز وجود خارجی نداشت ارتباطی که اینها با مجوز داشتن در سفر یکی می برای یمن در زمستان ها در یمن مجوز بود چون این جزیره تا یمن در اختیار پادشاهان ایرانی بود استانداردی که می فرستدن از زردشی ها بود ساکن یمن بود در یمن با مجوز ایلا در فشان هم که می مجوس مجوز و طرف ایران و همین ارابه فعلی هم نمی آمدن ارتباط ندون اولین باری که براش این ارتباط برقرار شد یک شرهایی هم داره اجازش کرد جاش اینجا نیست در اون سفری بود که الان از نرحزانی و خالج نوری به بحرین که چون در بحرین یه بود این سن نوبه هم سنت احلال کتاب این در زمان خود پیمنبر گفتی چون ممکنه بعضی از صحابه خبر نداشتن متلع نبود ارز کردم یک مشکلي هست اینا یک جوری تر میکنن در واقع خارجی در کتاب رساله شاف ارز کردم قسه که کسي پیش عمر رفت یک مسئله پرسی عمر ی جواب داد ز فت بععد که از صحابه اونجا بو گفت که یا عمر من پیش پیغمبر بدن سوالی کردن انطور پیغمبر فرمود عمر و خیل خو برر همن حف که پیغمبر طبه عمل بکننه به یعنی برای اینا خیلی راحت بود مثلا عمر برشتر و ظاهر از مکه ایمان رو بود چندین سال قبل الگهیرت تمام دوران اگهیرت رو با مدینه در مدینه پیش بگن برده و معضاله خیلی برایشون راحته که بگن نه خبر نداشته فرسون خلیفه هم شده امیر مؤمن شد سبسه فرد عادی از این مسئله که یک صحابی عادی خبر داشته بی و از این شواهد زیاد نداریم که دیگه اگر بخوام وارد بحث بشیم طول می‌کشه علاوه حال این مسئله که آیا اسماء دین خب از این مسئله تابع مسئله دیگریه و اون مسئله سابقه دی بود عرض این مسئله اساسیش به عنوان مسئله هفتم در اینجا اختلق بودی جواز تدریج فل بیان تا آیا تدریج در بیان سریعه یا نه از سر برد از مسائل این هایی که اینا گرفتن درست نیست و از درست نیست خب این بر میگرده به اون تفسیر کلی که ما از وحی و شریعت داریم تفسیر به نداره در روایات ما تأکید شده در جمله از آیات قرآن هم ظاهرش همینطوره که اصولاً در شمه و از تمام حقاید وحیانی بر قلب پیغمبر نازل شد یعنی پیغمبر اکرم تمام اون چی که وحی الهی بود در پیه بیست و به صورت اجمالی حضرت دریافت کرده اون چی که بعد ما آمده این صورت تفصیلیه به سرست و بله تمام رو وقت طبیعتا اگر ما این تفصیل داشته باشیم حتی در ادبه از روایات آمده که در همون شب هم اضافه بر طلبی و به جمعی مراتبشیه مرتبه خاتمیت اضافه بر او جمعی مساله عباد رو تا روز قیامت پیغنبردی یعنی یک انکشاف نور نوری برای رسول الله حاصل شد یک کمال نوری در رسولله حاصل شد که تمام اون چه که مردم امت غیر امت علیان مختلف جاهای مختلف هرچی که بشر تاروز یا آمد در طول زمان در جمیع بستری زمین احتیاج به او داره اینا را پیغمبر دید ولی در حقیقت این تدریج در بیان اینطور معلوم شه اختصاص به وحی نداره سنت هم یه اون تدریج در بیان نداره این روایتی که ما داریم فقط وحی نیست که تدریج در بیان داره سنت هم تدریجه یعنی که سنن الیه سنن الیه هم شرط مرعث معین شد چون ملاقات مشخص مبادی جعل مشخص شد اون سنت چون مشخص شد لذا تمام سنن هم بر رسول الله واضح شد و حتی جعل و تشریح بر رسول الله داده شد چیزی که بود تدریج یعنی مثلا یکی یکی فرض انزه اُمّهات وحن که مسئله روزه بود پیغمبر داشت سیزده سالی که در مکه بودن ظاهرن علی علم و اندالله داره, داره که میگرسن روی زد اما ظاهرن با مجموعی شواهر تاریخی پیغمبر و اصحاب و صحابه روزه نمیگرسن در مکه سیزده ماهی سیزده سالی که بود حالا سه سال اولیش که تستطور بود ده سالی که علمی شد بعد از یوم اومد و بعد هم که مدینه آمدن موقع تشتیبادن شده قبل از ماه رمزان بود اون ماه رمزان اول هم روزه نگردن بعد آشوره شد که روزه گردن با به همه هایی یه و عنوان نجات هست موسا سلام الله علیه بعد قبل از ماه رمزان سال دوم که شعبان آیا تو روزه نازر شد ماه رمزان دوم تا آخر رو پیغمبر اکران روزه گردن و همچین محلی زکات رو که از زکات به عنوان یک مالیات حکومتی به یک مال حکومتی از سال هشتمه ریلا آیات زکات از مکه تو آیاتی در باقی زکار تفه از مکه است نه یه باید مدینه لیکن ما اگر نبود عواش از زکات میداد امامش این داره بباسی از دار. آم میداده پول میداده همه چی اونه که جمعه حکومتی آمد این آیه بود خود من همواله هم صدره من چند بار که لحظ کنم تمام آیات زکار دلسته ما خطاب به مکلپین و مؤمنین آتو زکار فقط همین یک دانه آیه داریم خطاب به رسول من اونی که خطاب به فیغنبته خود من انواره یکیه در کل قرآن عقیم و سراب و آتو زکات زیاد داریم اما خطاب به مکلپینه اما اونی که وزیفه یه فیغنبت به عنوان ایسا حاکم دولت اسلامی مستر که از خود من انبال این صدر رفتن آید و در روایت سعیهی داریم که از این دماحه هم برشور کردن زکاز رو گرفتن و این آیه حدود سال هشت چیگه با شباهدی که داره شاده قبلش نمیخواه اما دین برسوشه این منافات نظر پس بس الی تدریج در بیان به قول خود این آقا گفت دلیل و جوازی با ولیشون میگرد چی بیر این مدهبش درسته یعنی برمیگرده یک مده اساسی واقعی و این در قلوم و قرآن شناسی من آن قلوم و قرآنی هم مورد ورس خرای تو کلام هم بیر مناسبت یه هست و حسول هم هست و برمیگرده اضافه بر مسئله یکیفیت ورس در حقیقت سنن و تصمیم رسول الله اصلا سنن چی جوریه وقت فقط هر بیردی من در این اضافه بر تره مسئله در دیدگاه اهل سنت گاه بوقع خودون خودمونم با اونا بگیم ها این نکته رو خود بکنیم تو این مسئله تدریجی در بیان فرد رو که ما و این معلی مسلاح با اهل سنت تدریج در بیان سنت ما هم اختلاف داریم این تدریجی بیانیش در روژه ورد با هم حقیقت اختلاف نداریم به این معنا که در تیه 23 سال اون چی که برقل مبارد ورد شده و طرفی از ورد کرده بودن اون تمام شد و 23 سال خرد شد. اون مسئله سنت و سنن النبی سلامت الله و سلامه مواله این سنن رسول الله بعضی از سنن از شواهدی که ما در رباره خودمون داریم ممکن است بیانش رو ترسی بفتاده تا زمان امام باقر، امام صادق، بلکه از مجموعه یه رباره که اون تحلیل نهایی سنت و بیان نهایی سنت در با تمام جهاتش اینشالله در زمان عزب حیث الله فرد بود این نقطه فرق ما با سنت در تدرج بیانی قرآنی وحیانی اون تبدیل در تدراج بیان سنم سنم نبی و ما ارز کردیم اون روایاتی که بیه محفوظه و الان نبیه فرق فرق و ارزتراجه و الان اینا همون تدراج بیانه ظاهرش حق تشریعه یعنی این مهلی حالی حق تشریع دارند در سنم مثل این که رسول الله فیلم بحث ما در مبارس مناسر کاروس مفصل متعرض شدیم و وقلم یا آن که آنجا مراجعه کن ما اونجا شواهد استغانه ای رو اقامه کردیم که شواهد مشیره به این که اونی که ما فرزره و الی نبیه فقط فرزره و الی احمد تدرج بیانیه فرایت از روحش تدرج بیانیه است ان الیهان مساله در بیان رو که ایشون نوشته که آیات یای تضیانه حرفش اینه که بحث نواز نواد ببینم تمام بقولان مثل بحث عقل نظری در شریعت ما ولی شواهد قطعیست ولی که تدراج بیان بوده البته گاهی اوقات بعضی از اقسام تدراج بیانی بیان مستاق بوده اون باز این مرتبه دیگریه اونم منافذ با بیانیت و لذا احتمال میگن درسن کنند با مجموعی شواهد موجود بعید نیست این که در شعن نزول آیات بعد وقتا یک آیه نوشن مکه نازر شد تو مدینه بلید نیست هر دوست که هم در مکه نازر هم در مدینه همین آیه آتدربار با حققه و برمسکین و برمسکین و خب این موارد البته این اختلافی ایست ازده از مفتسنه بسند مد... مد... مدینه نازر شد اما خب ازدهی معاتقه در که در مکه نازر شد اما خب این با پدر که بعد از خیبر بوده خی و این نیز در دو بار نازد شده یک بار خود اصل تشریح بوده که در مکه باشه یه بار هم از جبرئی که نازدشان بنات تطویر خرمده باشه ولذا خود آیه که و آت در قربا حقه و مسکین و نسبیل این سه طایفه شده پیشانه و قربا و مسکین و همه اما تمام این بباراتی که وارد شده در روز در بعد از قضیه خدک این آیه نازر شد بر رسول الله فقط صدر آیت اگه ای بکنیم هیچ شد نگه که با کامل نازر و نزل جبرعیل و حال و آزه در غرب با و حقه و همین نزل در تمام تفاصیب من تمام رو باید لفت کردن تو هیچ کده نشه آیه کامل ذکر نشده این نشون میره که این نحوه تدریج در بیان هم درسته که مثلا یک مورد ایروپی من خداراند متعاد روی یک جهاتی که حتی بیان موردیش رو هم با انجام بده پس اون حکن کلی اول اول در مکه در زمان مبعث شده شد مبعث شد بعد آیه باز در مکه نظر شده باز دو هر طب همین ای آیه صدر آیه در مورد از در آمون با علیه ها در مدینه منظره بعد از قصه مسئله مساله 8م یعنی که وحنی که من خود که و اما این ممایده. اما این که اگر پیغمبر جل سنت فرمود در روایت صحیح خوزه داره تصرف سنت و ادیلن فریضه اگر به بر اون بیان رو پرمودن جل ترمیدن حکم شکن فریضه اما وقتی این رو منشون سابقا توضیح این داره این روز به اختصار هست ما ارز از مجموعی شواهد البته درمیان احرستانت هم هست میان ما مقصد تو رباطه امام باقی قیلی واضح آمده بعد در رباطه ترم باقی متاخلی به این وضوع نیست شاید منشه این نجموعه فتح ما بعد خیلی رو مسئله سنت و فریده کار رسمینش از مجموعش این که در شریعت اساساً دو سین خکمه مثل الان در دنیا امروز همین همینی در خود ایران ما یه قانون اساسی وجود داره به. یه قانون مدنی یه قانون خاص که در مواد خاص و بلید نیست که کتاب یعنی فرایض الانی و کتاب یه جور بوده اون و اون که ما سلمان دیگری بوده و با آثاری با هم داره که در تعارض، در تضاهم، در غیرش آثار چه حتی در مسئله ترتب ما مسئله ترتبی این احتمال دادیم که اگر اسیان فریده بکنه امر سنت احیان نمیشه با علمانه این امر زنده نمیشه نمیتونه با اسیان فریده سنت رو انجام بده دیگه شونی توضیحاتش گذشتی بخنه مالا یکی کنار که به تدریج داره بیان میشه در مقام بیان هست که به تیالاتش بسن تمسک کنیم بایده شوش کنیم وقتی هم در مقام بیان تمام اون چی که بایده نظرش چی جوروه بیانش تمسک کنیم چرا دیگه اطلاق اون محسس نیاد مثلا در سنن مثلا رو مبانی ما که جواز تدریج رو تا زمان اهمه اجازه داده شد شو. شاید نماز میشه به تمسک بعد مسئله هشتمی رو ایشون مقدر کرده که اگر لفظه عام می آمد یا عبادت یا نه آیا واجب اعتقاد عمومش یا نه این مثلا به نظر ما ارزش اصولی نداره یعنی آیا مثلا اگر گفت مثلا به قول خودش آیه میراث که ما باید معتقد بشیم به عمومش یا نه قد اعتقاد به عموم نمیخواه دلیلی یا متنی مثلا اصلا بحث بحث عقیق نیست به نظر ما یعنی به عبارت دیگر این بحث نتیجه چنده نداره بحثی که ما در قصول داریم همیشه به حجیت این مثلا قرد داشته باشیم قرد نداشته باشیم بحث حجیت هر وقت عموم می آمد. مادام خاص می آمده همون عموم حجته اگر تخصیصم خورد مقدار تخصیص خارج بقیه خجر یک بحثی کردن که اگر تخصیص خورد یک جوری بگه که بردم مخصر دیگه می من لازم می بحثی که در حصول ما لازم داریم همین مرد داره این که حتما باید دلیلی بیاره این بیشه از کدم شبهات کلامیه براشون من فرصول دلیلی براشون اون وقت باز بخش دیگری رویشون من درد راجع به ظاهر و تعویل البته بحث ظهور که خب یک بحث خودش پی نفسه ظاهر هم معنا بکنه ظاهر ظاهرم که توضیح الواضحات برای اشکال مشکلات قرار تصویر واخه ظهور رو بدی یه اصطلاح اصولی شده که ظاهر یه چیزی که این معنای یه معنایی ازش فهمیده میشه در نظر گرفت، و که احتمال ظریف هم غیرش جاذبه میشه یه در مقابل نه ورزنه اصطلاح درست نیست. تفکیر نداره چون اکثر ما در مباحث اصولی دنبال قد و نیستیم که دنبال ظهور نوعی و عرفی هستیم. بل یه اصطلاحی که بعضی از اصولی میگن قطع اورپی حتی اورپی حتی اون شبیه اینه میگن مراد از قطع اورپی مقابل واضحه هر چی واضح, واضح میگن غل ما دوغالی اصطلاح نیستیم که نفس و ظاهره و یک حجت اون شبیه این حجیت دوامش به ظهور حالا احتمال ظریفی داده بشه یا نشه اون تأثیری نداره یعنی اون در خود مسئله ظهور تیر چندان نظره یه تفسیری کرده برای ظاهر رو بعد یک مناقشاتی کرده و بعد تفسیریم یعنی برای تأویل کرده و مناقش لفظ تأویل نیازه به شرح خاصی داره اولا در خود قرآن به کار برده شده و در قرآن به عنوان یک به اصطلاح بار منفی باش با حساب شده ولدین ولدینی که قلوبه مرده نما یک سبون تعبیلن. حذیله قرآن. اما آیا قرآن عنزل الكتاب من حالات آزمون مختصر و اخر متشابهات، في و, و این کلمه ای ما الله بر آمن. این در قرآن آمده. این؟ این در اصول خواهی نخواهی و در فعل و در معارف دینی ما محصوصا توی دو تا از معارف دینی ما خیلی نفش تگاه کرد یکی تو بخشه تفسیری خیلی نفش تگاه کرد یکی از فعل, فعل تو ترویل جمع بین ربایت متعارضه یعنی سر کردن اگر مثلا ببینن یک مطلبی خیلی علا قاعده نمیاد اینه یعنی بیان ترویل بکنن مثلا میدونین شخصی هست خیلان این از بزرگان از هم بی مناسبت که رشته تشبه رجال به نساء چه همین دیگه که دخترش اون دهعمرت که چون او توصیف کرد این قیلان از بزرگان و از اسای خریف بود این رفتی که به اصطلاح اسلام و فرس اسلام و دخترش اسلام اسلام آوردن درس انداز پیغمبر فرمودن امشک اربع و فارق صاهرانه خب، تا نگه دار یک ادعی از, از علما اومدن این ابو حنفی اینطور میان معروف راستگی رو میان ابو میگه من سعی کردم دین رو مثلا جنبه عقلانی بدم. لذا اگر پیغمبر زنده بود خیلی از آرا من قبول نمی‌کرد. لوکان نبی در تضعه كثيرا من امر. خلاص؟ خب این ظاهر حدیث خیلی واضحه امسه که عرب ان و فارس سائران خیلی خب این میگه نمیشه که روش علایذ در میلیارد سازه. بخیر ممکنه مثلا چارته یکی از اول باشه یکی از دست باشه یکی از آخر باشه لذا مثلا نرس به احناف هم ما رو اصحاب علیهنه اینجوریه که که اوله و اصحاب علیهنه چون یکی از کارهای مهمه که خود سنیان چیزی درنگه نه نرس ولی ایشون تقدیر میکنه اونم نمیدونم بالاخره چیزی که اومده موجود این از... فار اول عبار... هلو یه وقت سنی عین اون روبردا اونصنده مثلا ابو هریر گفتن نمیشه آخه بالاخره این چارتا تا بالاخره یه جور عهد بسته بودن نظام مراد از امسک اربعن و فارص سایرونه تغییر کرده گفت تمام عقل‌ها فاسده این 10 تا با اسلام تماما تماماً عهدشون فاسده از نو به چهار تاشون عهد دادن اینجور بعد با فواید بسازه خب میشه چون بالاخره نسبت صحت نواقش اون که چهار تا رو بگیره شیش تا خود به خود باطل بشه باز مثلا نوشته که یهتمل انهو عمر از زود تحبیل ثبوت بله به اختیار اوائل نسا مراد از همسک اربعه یعنی به حساب تسرسل تاریخی اون زنی که اول ازدواج شده اونا نگه بدار بقیه عبداش باطله یعنی آمده رو قاعده خود ما هم هم که که کسی مثلا جایی رفت بزا زنگ گرفت و نمیدونست که این زنگ که پنجمیه اون پنجمی باطله مختار نیست این که بگه اولی باطله اونایی که بعد از اکمال عدد میشه اونا باطلن. اگه اشتباه گیره اونا باطلن. یا یک زن دیگه بر اثر دیگه تو خواهر این زن اول بشه مخیر نیست که یکی دیر نگذر دیگه رو بکنه چون اینم نعرض شده که فیروز دیلمی که از ایران بوده وقتی اصلاحات دو زن داشت از دفعا امسه که اگه تا همه و خواهر خیلی اخرام این بیگونم همینجور بفت دو تا خواهر داشت زنش دو تا زنش خواهر بوده بعد پیام پیانجش... یک خب الان طبق قائزی در که به اینطوره اگر یک زن دو بر میگیره برناسه زن اول خواهر با زن اولش خبر نداشت برناسه که خواهران خون دو برناسه اولی که درسته دو برناسه خوبی مستدر بود این رضا شعب رو هنگه گفته همچه که در موامه هست اونام بالا همینطور باشه چطور پیغمبر گفته که فرمودن همچه ایت هماما شعر ایت هماما یعنی خصوص اولی رو نگرد دار دو گرمی خب این آقام می روشتیه این آقای آمده که انسان عاقل این کلام بخونه خب این معناه نمیتونه همچه ایت هماما شعر یعنی خیلی ا همسک ان و فارسا ارهانه که خیلی عربی شوازه این مثال ها رضده برای تعدیل که این قردشون از تعدیل این بوده که این روایت مبارکه حسب قائده معنا بکنن موشن تو حسب حسن شرط چارپه اولی درست بقیه باطه مثل که اگر ما در اسلام هم این کارو بکنیم چارپه اول درست بقیه باطه اگر بسیار در این تایلنگ بود تو جا بود یک مسلمون هم بود 8000 30-30-8000 اون اون جا به ترتیب چون مسلمونه به ترتیب این چون کافر بوده به ترتیب نیست روشن شده ایشان در از یک مقدار اینجور ترکیب کردن که بعد ایشون مثالهای زیادی, زیادی زدن در تحویلاتی که شده مثلا لا سیام لمنلم یا بیت سیام لمنلم گفتن ابو هنیف گفته مراد ثمه و نظر مال ماهروزان نیست عزیز خطا سهرت اینجوری کرده یه مقدار تعیلاتی رو که دیگه وقتش تموم شده و باطل هم هست یعنی صرف وقتی مالای یعنی هست. یه مقدار تعیلات اینطوری شده البته این مشکل به این مقدار حل نمیشه یعنی این مقداری که با الان گفتین اگر کلمه تعویض در موارد آیات تفسیری به در مورد آ... آیات سوره کوهید و اصول خود کلمه تعویض اساسا مردتا از اول معنای حجوعه آله اله ای یعنی وقتی انسان نگاه میکنه در مجموعه آیات که در آیه هم از شده و در روایاتی که در تفسیر آمده و حتی در شواهد خارجی که مثلا امیر مومنی یا انما در جنگی که اون سطح جنگ همیرونی که ظاهرا بین مسلمان ها بود ظاهرن بین داخل دنیا اسلام بود بعد اما می شونمون به این که صادقاً با شما محاربه کردیم علا تنزیله خلی هم نقاطه بکنم علا تحویله این با تحویله که به اصلاف ظاهر خب مسلمان هم. کافر نیستن داره اممار میگه این تقیید حالا ارز ما در بحث بطون قرآن فهمی دوره دوم یه مقداری این مطلب رو اونجا توضیح دارم یه مقدار تو کمیادگیار کنم توضیح نمید ونجای مقدار توضیح داده شد اینها سه شمار اصطلاح هستند که اصلا فرق بین اینها اگر یا آئین دیده باشه در همین دعای سما الله دالا الذوالای و تعویل و لا تفسیر و لا ظاهر و لا باطن و غیره چهار تا عنوان رو آورده تعویل و تفسیر و ظاهر و باطن و در ذیل این دعا که نفر نرم کرده را يا عدم تعبير ها و حالات تدبیرم تدبیر بهش اضافه کرده مجموعاً در همین دعای سماع پنج صفت و اوالده پنج بحث و ظاهر ظاهرو باطن و تفسیر و تعبیر و تدبیر که تکرار یک تدبیر مثل همون تدبیریه که در بحث در هست از ذعر برای بعده یعنی که هم را از تدبیر، شبیه تدویر یعنی ما برسه اون چیزی که بعد از او واقع میشه یعنی اون مصدبی که واقع میشه با عنوان اینیت آیه این هم در سما تا آمده یعنی انابین اضافه شده در دعای سما ها اضافه شرق اینها و سوزیهات اینها و فرق اینها تدویر در مجموعه داری و تصدیلی و کلایی اوصن از که این یه و اما به لحاظ شیعه ما همیشه یه این دست نداریم ما بیشترین ابتدار در شیعه در مثلا تحویل در شد بعد از مکتبه من داریم از جمعه ما همیشه اول همه اونی که ما کنمش اقتلاح داریم را کنمش پیدا کردیم چه یک شرگی هم داره شواهیم داشتون میدهیم مثلت جمع بحثمون شده من خواهی از سر شیعه تا زمان ما مسئله که کنم در تاروز چهار سار این یکی جمعه اولین قدیگترینشون به یک معنا ترخه مثل یونسو مرد رحمه. یکی جمع مرغم شیف قائل قبلدشان قائل مرد این محوال بخصاره باشد یکی هم تخدیر زاهر مرغم کلینی باشه. یکی ترجیه که الان ما غالبا داره معاصرین ما غالبا ترجیه داره که سنی ها همین ترجیه رو داره سنیا ترجیه رو پس اون مطلق جمع تقامش به تقریبه خلاصش آفت و این مرگانی که در اینجا در بار و, و کافی من دیگه بست که اگر سبب هم کفیر داد باستی بستی بستی توی اول بستی بستی بستی زن. اونجا انشاءالله تفیم بردی کنم و سلام و